فصل 22. وقتی برگشتم بالش و هر رو سرش برداشته بود مطمئن بودم برمیداره ولی نگام نمی‌کرد. دمر خوابیده بود و جمع نمی‌خورد. دوباره نشستم کنار دستش با اون قیافه به هم ریختش نگام کرد قشنگ محکومم کرده بود درست عین تیم شمشیربازی پنسی همون موقع که وسایل و تو مترو جا گذاشتم دوستمون هیزر و دلفیلت حالش چطوره ماجرای جدیدی واسهش ننوشتی اونی که افسان و دارم تو ایسگاهه خیلی داستان خوبی بود بابا میکشاتت خدا نکنه چیزی بره تو مخش همچین میره که دیگه بیرون نیاد نمیکشه. کاشه کاری که میتونه بکنه اینه که کلی سرم قر بزن و بعدش بخود بفرستتم مدرسه این نظامی تنها کاری که میکنه همینه تازه من که اصلا خونه نمیمونم میرم میرم احتمالا میرم یه جا تو کلرادو. برا بابا تو هم تو مگه اسب سواری بلدی یاد میگیرم حتما یاد میگیرم خوبم یاد میگیرم سه سوتا میشه یاد گرفت خانم داشت با برچسبه به رو دستش ور میرفت انقدر با اون ور نرو چشمم افتاد به موهاش که نافرم کوتاه شده بود کی موها تو اینطوری کوتاه کرده؟ به تو چه؟ و خیلی بد جنس میشه یمونم دوباره همه در رو افتدی بعد جنس جنس شده بود جالب بود البته سینی نداشت ولی گاهی قشنگ شبیه خانم معلمم میشد شد نه خیر انگلیسی رو پاس کردن بعد به خاطر همین بدجنس شدنش ویشگونش گرفتم البته محکم نگرفتم یه طوری دراز کشیده بود که راحت نمیشد ویشگونش گرفت ولی خانم زد رو دستم البته نخورد بهم. به بعد یه گفت خب چرا اینجوری شد؟ منظورش این بود که چرا دوباره از مدرسه اخراجم کردن حالت حرفش ناراحتم کرد خدای من فیبی بس کن خست شدم انقدر جواب این و اونو دادم هزار یه دلیل واسه خودم دارم اونجا یکی از بدترین مدرسه هایی بود که میرفتم. رفتم پر آدم جهلی بود آدم جهلی بد جنس نمیتونی تو عمرت اینقدر آدم بد جنس رو ایجا ببینی مثلا کافی بود تو اتاق یکی جلسه گپ و گفتی چیزی باشه و یکی بیاد تو اگه طرف آدم مشنگ جوش باشه هیچ کس بهش اجازه نمیده بیاد تو همه وقتی کسی میخواد بیاد تو در قفل میکنن حوصله خودشون یه انجمن مخفی هم دارن که حوصله نداشتم عضو بشن یه پسرای جوش جوشی بی مزه هم هست که اسمش روبرت اکلیه اون میخواست بره تو انجمنه مدام میخواست بره ولی راش نمیدادن چون مشنگ و جوش جوشی بود اصلا حوصله ندارم تعریف کنم چی بود مدرسه گویی بود باور کن فیبی چی نمی گفته و خوب گوش میداد. قشنگ این معلوم بود داره گوش میده همیشه به حرف آدم گوش میده ده است. نصف مواقع خانم حرفتون میفهمه باور کن آره براش از پنسی گفتم حال کرده بود براش دارم تعریف می کنم حتی دوتا اصداده خوبی هم که داشتیم آدم جهلی بودن آقای اسپنسری یکیشونه زنش همیشه بهش هات چاکلت و آتاش خال میداد خیلی با هم خوب بودن ولی باید وقتی میدیدیش که مدیرمون ترمر میومد تو کلاس تاریخ میشه از کلاس همه یه نیم ساعتو میامد میشه از کلاس مثلا قرار بود کسی نفهمه که اون ته نشسته اما وسط مسطهای حرف اسپنسر یهو یه هر شوخی های حال به همزن میکرد و اسپنسر هم خودشو با خنده و لبخند زورکی و الوبل خفه میکرد همچین که هر کی ندونه فکر میکنه ترمر گوه شازده چیزی بود یکم درست صحبت کن باور کن بالا می آوردی. باور کن تا زه روز ها یه روزی بود به اسم پیشکسوتون که یه مش پیر پاتول که از سال 1776 به این طرف وارقو تحویل شده بودن را میافتادن تو مدرسه و زن و بچه و فکر و فامیلام دنبالشون یه یارویی که 50 سالش بود اومد دمه در اتاقمون و گفت اشکالی نداره بره دستشوی؟ دستشوی ته راه رو بود اولش نفهمیدم واسه چی میخواد میدونی واسه چی میخواست آقا میخواست پر ببینه حروف اول اسمش هنوزم رو در دست‌شویی هست یا نه مدام با همون حرف میزد و هی میگفت دورانی که تو پنسی بوده بهترین دوران زندگیشو کلی نصیحت کرد که مثلا به درد آیندهمون بخوره. خیلی ناراحتم کرد فیبی. نه اینکه آدم بدی باشه. نه ولی لازم نیست حتما آدم بدی باشی تا کسی رو ناراحت کنی. گایی میتونی آدم خوبی باشی و دیگر اونو ناراحت کنی. کافی وقتی دنبال حروف اول اسمت رو در دستشویی هستی یه مشنسیت احمقان بار طرف کنی اون وقت حسابی حال طرفو گرفتی نمیدونم اما شایدم اگه اونجوری نفسش بند نمیامد انقدر بعد نبود از اون همه پله بالا اومدن به هنهن هن افتاده بود تا مدتی که دنبال اسمش بود بعدجوری هن هن میکرد انقدر که سوراخای بینیش مسخره شده بودن و آدم دلش میسوخت اما باز بلکن نبود و مدام به من و استردیتر میگفت که تا میتونیم قدر این مدرسه رو بدونیم ای خدا فیبی نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم هیچی تو اون مدرسه نبود که ازش خوشم بیاده هیچی فیبی چیزی گفت ولی دهنش رو بالش بود و حرفشو نشنید چی؟ دهنه تو از اون رو بردار اینطوری ساده تو تو از هیچی خوشت نمیاد. این حرفش دیگه حسابی ناراحتم کرد. چرا نمیاد؟ معلومه که میاد. این حرفون از فیبی چرا این حرفو میزنی؟ چون نمیاد دیگه. از هیچی خوشت نمیاد. از هیچ مدرسهای خوشت نمیاد. از هیچی تو دنیا خوشت نمیاد که نمیاد. چرا میاد؟ اشتباهت همینه. دقیقا اشتباهت همین جاست. آخی این چه حرفیه میزنی؟ خیلی ناراحت شده بودم پسن. چون نمیاد که نمیاد یکی شو بگو فقط یکی یکی یه چیزی که خوشم میاد باشه مشکلی بود که نمیتونستم خیلی تمرکز کنم گاهی تمرکز که هر دن سخت میشه منظور چیزیه که خیلی ازش خوشم میاد جواب نداد یه طوری رو تخت راست کشیده بود که اصلا نمیدیدمش انگاری صد کیلومتری ازش دور بودم گفتم ده جواب منو بده فیبی. یه چیزی که خیلی خوشم میاد یا فقط خوشم میاد یه چیزی که خیلی خوشت میاد گفتم باشه ولی مشکلیم بود که نمیتونستم تمرکز کنم فقط اون دوتا راهبه که با سبد درب و داخونشون داشتن احان جمع میکردن به ذهنم رسید مخصوصا اون که اینکه دست آهنی دا داشت یاد اون پسر تو الکتون هیلز افتادم اسمش جیمز کاستل بود و حاضر نمیشد حرفیو که به آدم خودپسندی به اسم فیلستیوال زده پس بگیره. جیمز کاستل گفته بود این یارو آدم زیادی خودپسندی و یکی از دوستای عوضی استیبل به گوشش رسونده بود. استیبل هم با شیش از آدم اوزیهی دور برش رفته بودن اتاق کاستل رو در قفل کرده بودن و وادرش کرده بودن حرفشو پس بگیره. کاستل هم زیر بار نرفته بود. این هم ریخته بودن سرش. بهت نمیگم چه بلایی سرش آوردم ولی خیلی بحشتنال بود با این حال کستل کوتاه نایمده بود باید میدیدش می یه پسر لاغر و ای بود موچش اندازهی مداد بود بالاخره هم عوض اینکه حرفشو پس بگیره خودش از پنجری اتاق پرت کرد بیرون زیر دوش همون بودم و صده پرد چیزی شنیدم ولی فکر کردم رادیویی چیزی پرد شده نه یادم پد صده ملت رو شنیدم که از راه رو می دام بیرون من هم حوله همومم و تنم کردم و دویدم طبقه پایین جیمز که بیچاره رو پله سنگی پخ شده بود مرده بود دندونش یه طرف پرد شده بودن و خونش همه ریخته بود هیچ کس جورت نمی‌کرد کرد نزدیکشه <تصفح> یه من تنش بود بهش قرض داده بودم بچه که تو اتاقش بودن و اخراج کردن فقط همین حتی زندانم هم نرفتن این تنها چیزی بود که به فکرم رسید اون دوتا راهبه که سر سبونه دیدم و این پسر جیمز کستل تو الکتون هیلز از خرش این بود که طرف ها اصلا نمیشناختم یکی از اون آدمایی بی سر و صدا بود تو کلاس ریاضی باش هم کلاس بودم ولی اون, اون طرف کلاس میشه از نپا میشد روخونی کنه نمیرفت پای تخته تو آدرسا آدمایین که ناروخونی میکنن نمیرم پای تخته. گمونم اولین و آخرین باری که باش حرف زدم وقتی بود که میخواست یقه اسکی مون قرص بگیره. وقتی ازم هم چیزی خواست خیلی تعجب کردم. یادم میاد تو دستشویی بودم که گفت میگفت فامیلش داره میاد دنبالش که با هم برن دور دور. حتی نمیدونستم که میدونه من یقه اسکی دارم. و میدونستم اسمش توی لیست حضور و درست بعد از اسم منه. هولدن کالفید جیمز کاستل. اینو خوب یادمه راستش فقط روی این حساب که خوب نمیشناختمش نزدیک بود مو بهش قرض ندم فیبی به هم حرفی زد که نشنیدم چی گفتی تو؟ حتی یه چیز خوب هم تو سرت نیست چرا هست؟ چرا؟ هست فیبی خب پس بگو دیگه از... از ال خوشم میاد. از همین کاری که الان میکنم خوشم میاد. همینجا که با تو نشستم و حرف میزنم و به همه چی فکر میکنم و ال مرده. همیشه همینو میگی. ولی کسی که مرده و الان تو بهشته که حساب نیست، میدونم مرده. خیال میکنی حواسم نیست. ولی هنوزم میتونم دوستش داشته باشم. نمیتونم؟ چون یکی مرده دلیل نمیشه که دیگه دوستش نداشته باشی. مخصوصا اگه هزار بار از جماعت زنده بهتر باشه. فیبی چی نگف وقتی فکرش به جایی نمیرسه حرف نمیزنه بلش کن. ببین فیبی من الانو خیلی دوست دارم یعنی همین الان همین لحظه همینجا که با نشستم و داریم حرف میزنیم و شوخی میکنیم این که حساب نیست خیلی هم حسابه آخه چرا نیست آدم همیشه میگن این حساب نیست بسه دیگه خفه شدم از بس اینا شنیدم حرفه بد نزن باشه؟ یه مثال دیگه بزن یه چیزی بگو که دوست داری بشی مثلا میخوای دانشمند بشی یا وکیل یا چی دانشمند نمیتونم بشم چون از علوم سردر نمیارم خب وکیل چی؟ اینه بابا وکیل بودن گمونم بد نباشه ولی بهم ام نمیسازه وکیل بودن وقتی خوبه که بخوای بری آدم های بیگناه و نجات بدی ولی اگه وکیل بشی همچین کاری نمی کنی تا حدا چی پول در میاری او میری گلف بازی میکنی او بیریج بازی میکنی و ماشین بازی او خودت میذاری تو ویترین تا زه حتی اگه بری و آدم بیگانه یا نجات بدی از کجا معلوم که واسه نفست این کار کردی از کجا معلوم واسه این نکردی که بقیه بزنن روشونتو رو بگن چه وکیل توپی هستی به تبریک بگن که پرونده رو بردی و خبرنگار رو از سرکولت رو بالا میرن آره ها درسته اینا این, این فیلمای کثافت از کجا میدونی که از همین آدمی جلی نمیشی؟ مشکل اینجاست که نمیدونی مطمئن مطمئنم فیبی نمیدونست دارم چی میگم خب بچه هست دیگه ولی حداقل گوش میداد همین که کسی گوش کنه خودش خیلی خوبه گفت بابا میکشتت قشنگ میکشتت و حرفش گوش ندادم فکرم یه جای دیگه بود یه جای دور گفتم میدونی دوست دارم چی کار کنم میدونی میخوام چی کارشم اگه حق انتخاب داشتم میدونی چیو انتخاب میکردم میشه یکم درست سر حرف بزنی چیو اون ترانه رو بلدی که میخونه اگه ناتوری کسی رو که میاد تو دشت بده نجات اونو دوست دارم اشتباه میخونی میگه اگه ناتوری یکی رو ببینه که اومده تو دشت یه شعر از رابرت برنز میدونم شعر اونه راست میگفت درست؟ همونی بود که اون خوند یعنی اگه ناتوری یکی رو ببینه که اومده تو دشت ولی اون وقت نمیدونستم گفتم گمون میکردم همونی بود که خوندم ببین مدام یه تصویر تو سرمه بچهایی که دارن تو دشت بزرگی بازی میکنن یه عالمه بچگی کوچولو بیشتر از هزار تا هیچ همونجا نیست که موازه بشون باشه هیچ جز من من وایستادم لبهه یه پردگاه خطرناک و کارم اینه که نذارم ها بیان لبهه پردگاه یعنی اگه دیدن و حواسشون نبود دارن اشتباهی میرن من میرم میگیرمشون تمام روز کارم همینه اینکه فقط و فقط و فقط بشم ناتور دشت میدونم مسخره است ولی این تنها کاریه که دوست دارم فیبی آره میدونم میدونم خنده داره فیبی چی نگفت بعد چند دقیه برگشت گفت بابا میکشتت اصلا واسم مهم نیست از رو تخت بلند شدم میخواستم برم به استاد انگلیسمون تو الکترون هیلز زنگ بزنم اسمش آقای آنتولینی بود اون موقع نیویورک زندگی میکرد از الکتون هیلز رفته بود و حالا تو دانشگاه نیویورک انگلیسی درس میداد به فیبی گفتم باید یه زنگ بزنم زودی برمیگردم نخوابیا نمیخواستم وقتی تو اتاق پذیرایی هستم خوابش بگیره میدونستم نمیخوابه ولی گفتم تأکید کرده باشم داشتم میرفتم طرف در که فیبی صدام کرد برگشتم طرفش رو تخت نشسته بود خیلی ماه شده بود از این دختره فیلیس مارگولیز آراغ زدن یاد گرفتم گوش کن. گوش کردم از خودش یه صدایی درآورد. ولی اونجوری که باید نبود گفتم خوبه بعد رفتم تو پذیرایی و به معلم سابقم آقای آنتولینی زنگ زدم